درس چهارده هم خاندن در ایران مهمترین علل قهتی در ایران کمبود بارندگی و خوشسالیهای های پیاپی پی بوده که از دوران باستان باعث قحطی می قحطی و کمابی چه در ایران باستان و چه در دوران اسلامی شایع بوده است. در مورد قحطیهای ایران باستان در تاریخ تبری آمده است که در زمان فیروز سرزمین ایران هفت سال پیاپی پی به خوشسالی و قحطی دچار شد. رودخانه ها و غنات ها و باخ ها و درختان خوش شدند حتی پرندگان و درندگان هم از بین رفتند و اما چار پایان انقدر ضعیف شدند که دیگر قدرت باربری نداشتند در چنین زمانی فیروز به حکرانان ولایات و شهرها دستور داد که هیچ کس را به دادن مالیات وادار نکنند در برای های ایران در دوران بعد از اسلام آگاهی چندانی در دسترس نیست و اطلاعات موجود بیشتر مربوط به قرن‌های های و چهدهم هجری قمری است. مرگبارترین قحطی این دوران قحتی سال 1288 می باشد چرا که حدوداً 20 درصد جمعیت کشور در این قحتی جان خود را از دست دادند. از میان متون کلاسیک نصر فارسی، مقامات حمیدی مقامات حمیدی مشهورترین کتاب به زبان فارسی در فن مقال نویسی است که توسط قاضی حمیدالدین الدین ابن محمود بلخی نوشته شده است. مقال نویسی ابتدا در زبان عربی معمول شد که حکایات و مطالب مفید را با نصری مسجع و مقفا به صورت خطابه و مجلسگویی در جمع حاضران می خوندند. جمعآوری اینگونه سخن که به مقامات مشهور است به تعلیف کتاب‌هایی چون مقامات حریری و مقامات بدی و زمان منجر شد بدان که عشق سه قدم است اول قدم کشش است دوم قدم کوشش سوم قدم کوشش. از این سه قدم دو اختیاری است و یکی استراری در قدم کشش همسفت مار باید بود که بی پای بپوید و بی دست بجوید. و در قدم کوشش هم نعت مور باید بود که چون دائیه عشق او را در کار کشد به تن بار کشد و قدم کوشش نه قدم اختیاریست بلکه است که سلطان عشق متهم نیست و خون آشقان محترم نه ای جوان ندانسته ای که حجره عشق بام ندارد و صبح محبت شام نه عشق است آهنین و تنگ نه روی شکستن و نروی درنگ با این همه نبز و پیشاری پیشار تا بنگرم که کارد به استخوان رسیده و علت عشق به جان کشیده است یا نه دست به وی دادم گفت ندانسته ای که نبز آشقان از دست نگیرند از دل گیرند آب پیش داشتم گفت نشنیده ای که آب محبان از دیده مشاهده کنند مجسه بوغلمون عشق دیگرگون است و امارت علت عشق از آب دیده و آتش سینه است نزرنگ آبگینه بیشتر بدانیم سعدی سعدی یکی از بزرگترین شعرای ایران و جهان اسلام است کتاب‌های گلستان نصر و نظم و بوستان نظم مهمترین آثار وی به شمار می‌آیند سعدی در سال 691 در شیراز درگذشت و در نزدیکی این شهر به خاک سپرده شد. آرامگاه سعدی یکی از زیباترین بناهای استان فارس است. دو حکایت از گلستان سعدی. دوزدی به خانه پارسایی درآمد، چنان که جست چیزی نیافت. دلتنگ شد، پارسا خبر شد. گلیمی که بران آن خفته بود در راه دزدان داغد تا محروم نشود. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردن تنگ تو را کی شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پایپوشی نداشتم به جامعه کوفه در آمدم دلتنگ یکی را دیدم که پای نداشت سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بیکفشی صبر کردم مرق بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره برخان است وان که را دستگاه و قوت نیست شلقم پخت مرق بریان است ایران را بهتر بشناسیم کوچه نام یک کوچه در محله قدیمی جلفا در اسفهان محله جولفا که خدمت آن به دوره صفویه باز می‌گردد محله ارمنی نشین بوده است ولی اکنون غیر ارمنیان نیز در این محله زندگی می‌کنند در گذشته گروههای مختلف سنفی یا قومی و یا مذهبی در یک محل جمع می‌شدند و به آن محله می‌گفتند امروز مناطق مختلف شهر توسط شهرداری به ناهیه ها و منطقه های گوناگون تقسیم بندی شده است